خیلی پر شما صدافت برگیر رو شما زیاده می از خیات از در کده که جان دار سردشته جان به جان بزار که این دشته از اون نزار دار و سر کنان دار بیرون لب در دور کستی کام همه شیرهای مصدی از چشم خوشت دبان دارد ذکر رو ظلف تو دلم تو به که سر و شان دارد سینه بیش در مندان نمکی تمام دارد در چار زفن چحافظی جان حسن تو دوست کلا و جمع تناسیل لحظی داره خیلی با هم میاد و اینجا هم تمومه و اما ادان یه محطال دیگر رو اشاره کنم بهش اول قصده جمع از قدیم و لعیان بودن در همه داستان های دلیم. یه عده پادشاهان بودند که این ها نه تنها به آدمیان فرمون ربایی داشتند بلکه به جن و انس و دیب و مرک و پری و همه اینا فرمون ربایی و اینا یکی و دوتا هم نیستند اکثر پادشاهان اصلا در آغاز شاهنامه این طورنسی و مرس تنبورست اینا همه می‌بوید که حیوانات و درد و دام و اینا روز از باچان سامی سلیمان همین حال رو او حتی عناصر کارگانه هم تحت حکم میشه بعد در فرمانش و در زم باید که سلیمان پادشاه یهوده و در مدارک دینی یهود رتبه پیغمبری نداره اما مادر اسلام، خلعت فیلمبری هم به ارزان به هر حال سلیمان هست، تفسید چیزش که مرغ اولا زبان مرغان رو می‌تونست و بعدا مونا سخن می‌گوست و اینا مفصل هست و قصه سلیمان ها کل و رو تو تکرار کردنش معنی ندید. فقط اگر دوستانی هستند که در این زنی می‌گه در باید بدونند. شعر فارسی و فارسی، به طور دو پاید. یکی داستانهای پیغمبران و داستانهای دینی در حقیقت هم. که چون دین ما اسلام هم در جزد دینهای سامی است، دنباله دین یهود و دین مسیح منطقه دلیل اینکه در ایران هم بوده او اینا از،, از دین زردوش هم بسیار احساس از مثلا پولسترات و حساب رسیدن و ارز بهشت صورتی که در،, در اسلام بحث شده این در مداره که زردوشتی نه مداره که یهدوی اینا رو برای شعر فارسی و از این کتاب رو دست میکن به اجمال بسید و برای این کار باید کتاب داستان های به همبران رو بکیرن و مطالعه کنن و این کتاب ها عنوان عمومی قصص الامبیا ده قصص الامبیا اسم یه کتاب. هر کتابی که فرکوده شد به همبران اینیم سی اسمش قصص الامبیا که های متعدد به عربی و فارسی هست زیاد که همه حضرتشون همینه از آدم و داستان خبت شروع کنند تا به این سرگذشت اکشم را و حوادث این را اینا, اینا جزد مواد و مسائل شدی یعنی شاعر که اونجا فرصت نداره که به قصده این که موچه و سوریمان چی گفت و چی نگفت، مطرح کنید. فقط اشاره میکنید که زبانی بود راست دراز گشت، و رواز که خاکه خاطن جمع که کرد رواز باشید. شما باید خودتون بفهمید و رو و برای این کار از کردن. دواج موندن یکی از کتاب رسول و یکی از ساده ترین و قدیم ترین و در این حال مختصر ترینشون که بسیار هم خودش ورسه که من فقط از احادیث موثق از قران استفاده کردم کتاب به نام رسالت انبیای از ابراهیم نیشابوری در محلی به یدمایی علاوه مدیر مجله یاما با به هر چه ترجمون ترجمه نشر کتاب کتاب چاپ شده گویا اخیراً این دستگاهی که یعنی جانشین در جمهوری اسلامی جانشین مغوا ترجمه نشر کتاب شده اسمش چکل صامی الهامی و مرهنگیه. به نظرم چاپ تازه این کتاب شده برها قسط علمگی هر دو اصحاب نشاهوری اگر پیده نکردیم، هر قسط و هایی توگردیم برها مسئله رو یک پایه دیگرش هم داستان های مجید. یعنی روایت های هم این همون باز رو میگه شاه درخان سخن مدعیان میشن از شرمی از مظلمه یکمونتی یا کبی چون چه ها بیژن تنگ و در نیان چه باقی داستان رو دارد این چون شعر داستان همیت و, و از و این ها اه... و مطالب مرضود نماسه میدیه داستانهای میدیه هست یه طرف یک پایست برای فهم شعر و فارودشت پیغمبرانم فارودشت حالا عرض کردم که در داستان‌های ملی جمشید از پادشاهانی است که این از نظر فرمون روایی به دد و دام و وحش و تیر و پری و دیو و همه چیز خیلی بالا یعنی tariha میگویند که به فرمان او مره دی دیب, دیب و, و پری زمانه براسوز از دابه بعدا میگه که به فرد کیانی یکی ترسا چه مایه به دوب و خرندر نشا که چون خواستی دیب برداشتی همین به گردون برداشت سر سال نو خرمز فرودین پیاسوزو از جنگ روی زمین چون پرشید تابان میان هوا نشسته در او فرمان برقوبت بس که گوهر هم شاندن بران روز را روز دوبار دیگر از پادشهانی که باز بحش و و جن و امس و اینا فرماشده کیکابوسه که اشاره هم میشه که یه بار به با آسمون برد کیکابوس هم از آدم که بعد منحرف شد از راه عبورایی و در نتیجه مورد قذب قرار گرفت اینان مثل نمرود که ما هم پرواز کرده است. این داستان هم هست و باید قصه نمرود رو در برام بدون قصه پرواز کیکابوس هم با در شانه هم بدون راه دیگر یک وجود تنید حالا مسئله اساسی این هستی داستانهای جمشید و سلیمان از دومان بزیار از پیش از اسطن به هم آمین کتابی از کار از روایت‌های، مثل کتاب‌های حدیث ما در تفصیل دورات، انا ها فلمون در روزه داشتان‌های مفصلی در باره سلیمان هست و این‌ها از خیلی قدیر، اون چه در باره جمعشی و همچه در باره سلیمان آده به هم حاکی شده در, در دوره‌ی فردات اسلام هم گاه می‌گرد سریمان، فاراتون سلیمانه گاه می‌گرد سلیمان، این جمعشی بیگه که میشه. آاف می بین زبان موز وعاصف دراز گشت شده زبان موز وعاصف دراز گشت وعاصف فیز کمانه در استه محچم باز سرمانه و جمع زبان موز و عاصف دراز گشت و رواز که خارج خاتم جمع. یاوه کرد و باز نکست یاوه کرد و این که آمده تو همین قضب هم ترمیم جم یعنی فاتم سلطان. بنابراین این قصده ها این که که های کسی که از جام دارد سلطانی جم مدام دارن از فمسیل بسیار بسیار وسیع گستردهی بس به همه اجزای آقایی مثل فرن روحی سلیمان و جمع. هم کسی که در جام دارد سلطانی جمع مدام دارد حالا یک توجه دیگه این است که خوب رمونی این این سلطانی مدام دارد یعنی پیوسته در وزدیه مثل سلطانی که البته این مذمون خیلی کسان که که که که که دویار زیرت از باقی پوهن جومنی فرافتی و کتابی در نصیر چمنی من به دنیا و آخرت ندارم اگر اگرچه در فیه مختلف خرق انجامنی یا خرق انجامنی هر بشت. یه شاعر ناخوامی میگه که گرد دست دهد ز مغز گندم نانی، و از می دومنی ز گوزفندی رانی با لال روخی بستانی که نیست در خور سلطانی که بنابرای این میگه که کسی که جام پی داره پیوسته سلطانی جمعید داره یعنی ستنان داره اون که قدام یه معنی دیگه چند شرابه این مسئله از همان جام جام در رست داره, داره. هر این هرگاه به شراب هم هست بنابرای جای دیگری خیلی بازی می کنه حافظ با این ما در تیاله اشت رو خیاری خیلی خیلی خبرز لذت شرب مدام ما شرب مدام همه معنی شرب دانیه همه منی نوشیده می شده حتی حشیش رو نیگوین که در عرضی بشیدیگن مدامه هیدر بویا دربیش هی در نامی برای اولین بار در ممالک عربی این حشیش رو برده و بنابراین به شدن مدامه یعنی که آورده و شعریم هست که در الخمره و به مدامه هایی داریم شراف و مدامه ما همبر از و قادر ستیران مثل آن کسی به دست جام دارد، سلطانی جمع قرام دارد بعد، بلا فاصله می که شراب و و رو با آب حیات نباله داشتیم اینجای به بیت که من نظیر این بیت رو به این زیبایی واقعا نشکم با یه بیت دستی شاید دارم که این که همه شعراشت همه ولی می‌نویسم اصلا پای تخته میگه به احتیاط ز دست خذر خیاله بگیم به احتیاط ز دست خذر خیاله بگیم با حیات از به جای هم چی جا داشت. جا داشت. داشت. داشت. من سال سال تا اینکه برای ادلاش کردن طرح پیشنهاد سال 5 میدونستم 40 مسلمانバース و اندازه‌گیری که تا کاملا زنگ زده و اندازه شرافت و شادوزی درام از این مقایسه کردن آب و حیات با شراب و احیاناً برپرنهادن شراب از آب و حیات صحبت قدید بدون که داستی بعض جمعه همینجا آبی که خذر حیات از اون یافت درمه ی کذیبی که جامعه دار البته این این جام و این مجده چنان که می دونیم این یعنی شراب در حقیقت به هم و درباره یا حیات من یه بار مثل این که هفتاده بودن ولی با هران بسیادتری هستن نام شدیم روزون و پشمیچار که روزون و پشمیچار هر مستمه تازه که می مونم از سلی هم هم که ما بچه بودیم و ها که چشمه حیوان هست و حیات هست و هرکی بخوره زنده می‌مونه و اول از اول که که شعر یعنی توفه خوبی اول زنده بودن که من از این هستی در وزر تنگ آمدم وای برکرش که محکوم بخون به اول دوسته که بعد بکرم که یک کاش ما بیاد یه تی در این دو مارسو آب پای بچه بود. بعد یه ذره بزرگتر شدیم. تمام هاون، هر کره زمین ما کشف کردن، همه رو دیدن. دیگه جای پنهانی وجود نداره. کجای این زمین ممکن چشمه‌ای باشه؟ این کار اون وان یه اصلا قانون زندگیه. که ای یه روزی در فلسفه این ثابت که که یه روزی به وجود میاد یه روزی که ما رو زمین همه هم مخته و مذرکات رو اصلا ببیر پایش یه ذری بزرگتر شدیم دیدیم که, بیشتر بکنیم. دیدیم که مردم دو تا زندگی دارند یکی زندگی مادی خاکی جسمانی که همه درش شیل کرد یک روز به دنیا میان و یک روز هم از دنیا میار. یک زندگی یعنی این هست که فقط بعد از زیها دارم اون زندگی معنوی نمید روحی هستم که در عواسط زندگیشون یا بعد از زندگیشون زندگانی معنویشون شد و مدت زیادی یا کمی یا گاهی برای اول ادامه روی می کنید که اول جبونیش دستش بدهنش میرسید و حرص کنم که نوم برگ و برگی داشت و زندگی داشت، نشست که خشف سرودن شاهانه زد به این از همه کاربازش داشت همه یه و نیستیشو در راه کار کرد و نرسید تو آتیا دادیا بردن، کوردن و به هر حال یا رفت داد عرفت داد، چرافت داد،, جوافت داد. از بابا بگیره بایدم بشینه بسازه به که یه وقتی پیر شده بود و هشتاد سالش بود یه ذره دو فرمه و یه ذره جو برای و اون و هیزم اون فراسون هوای سرد و حشتناک نداشت و گفت که نماندم نمکسوز و هیزم نه جو نه چیزی پدیده از تا جو گروه دو دست تو دو من آهوگه که تویی دست سال می رو گذید یه که خوش به حال اون به دارد و نقل و نام و نبی سر گوستان می توانت سر گوستان مقصودی نیست که گوستان رو بوشن اون تو بخورد یعنی گوشتش رو کنن یه زنسون رو بخورد میگه مرا نیست این خوردم آن راگه هم ببخش در مردان این هم تو این گرشنگی و برد, برد و در همون روزگاره اوی آدمی بود نام محمود قصنبی که اولین کسی بود که اسم کویتان رو خودش گذاشته بود و هزاران بنده صاحب جهار داشت و گلدهای او رو خدا میدونه دونه بود و وقتی از فتح همیستان برمیگشت یک هفته فمزاد رو چرافون میکردند اگر امروز کسی اسم محنوب غزبین رو میتونه به دلیل این, این, این بخت نصاحبی داشته این در توفر و الان مزار کردوسی و آرامگاه کردوسی و اون شکر جلال هست بگیر افغانستان یه تمیله ای هست ایست که راهی اینجا میتوندن که قبل دمدهی جاپیدان خیزروسی بعد از مرگش توی شده این اگه آوهیات نخوده که آو جا که حیات که جاپید اگه آوهیات نخوده آخرین کسانی که ما بشنستیم ده خدا احتمالاً مسرده این ها آوهیات کنم چشمه آو ارز کنند که اما خود مفهوم آب حیاتم از کجا ذهن و شر رق نکردی نخره این تصور که میگن که آب یادم میخوره و زنده میمونه این من نگرم یه حبیه یه این قصدی در حدود ده هزار سال پیش در روی زمین یخمندان بسیار شدیدی رو بود فکر کرد و شد که اکثر این حیوانات عظیم و جزبه، و را در همون یخمندان از دیگر آدمیزاد هم تلفات مبسورد داده به یعنی دستگار امراد بشن هم تراخت بزنده، مانجره ها و منطقه ها بشن چون کار دشگاه نمیکرد، مرد دشگاه نمیکرد دانستور و اینا، اینا ذهنشون کار نمیکرد داره مقابل مامود برد، تنشون رو پشتشون رو رفت شروع کرده به مهاجره رو سمت, سمت نوانی رسته بود، به هوابش آن مثل طرف آنطور سیازگاه و اونها نسلش مانبرز نشد و بعد از این یک یعنی با آثاری که بودید داره و از اونی گروه که هست حد می‌دنم که جمعیت پوریزمی در موزگاه ده هزار تنشد. ده هزار تند که تمام احفاظ فهی بشهر دنباله یه در این ماجرای عقب قشیدی و سرازیر شدن به سمت جنوب که همه جا برک و همه جا بیه همه جا سرمای حومداخ و همه جا مرگ بود در بعض این غاق چشمهای آگرد هایی از دوزنگ که آب بود آبگرم لاری‌جان نمی‌چه رفت که فهنگ چطور بودن این از زیر زمین هر می‌آمده بود که مقادیر زیاد از در انصاف مثلا هست. در عردگیر این جهاز در شمالی آزربایجان یعنی در در در اسم چالا برشتن آزربایجان سورگی همیش در اونجا در بسیاری مخاطی دیگری دیگر دیگر. در بادن بادن هم جایی جا هر جایی چنین چشمی وجود داشت گفت های آب از, از می کرد و اونجا گیاه می گیاه که میروید روید جمع می شود. و یه کانونی از حیات و بشر رو به من وقتی که به این نامیه میرسید حسی که از این بندگی شد بازگاه چیزی الان خوردن داشت این کنست بمینه از این گرمی و این رو این چشمه رو این تصمتور چشمه و چشمه آوالیات از اینجا گرسید و برای اینکه اهمیت اهمیتی رو بدونید، باید عرض بکنم یه در گروهی در, در اومیانوس مجمعیت شمالی در دریاه شمال آیسلند، که حتماً از من بله که خیلی از شمال، از شمال انگلستان بابش میدید این آیسلند، دیگه از ستادرات، مهمش موزه. مثلاً ها موز خودشو میده، موز هم ستادر برای این آتش پشانیه بخشی از این جزیجه هست که هم سرک هستن بداقتن جاهای هم آب آبگرد مجانی مجانیه آب سرده که و کافیس که جایلی این آدار تسکیفیشن روش و از منابع بزرگ که افتصاد آیستن بنابراین این مسئله چشمه های آگر نقایتش شوقی و حرف چیز نیست احتمالا تصور آب حیوان و چشمه حیوان و اینکه که چشمه ای بوده که اگر میرسید کسی به زنده میمون این چشمه های اما این که خزکیه و من نمیدونم خزک اون چه میدونم این از می دیوست یه چنین چشمی در ذهن و به میاد بعد باید رسته‌های متعدد درست بشه که یه رفتن دنباله یکیشون نهیمده مثل اسکندر سکندر را نمی‌بخشن از آن، آجیب بوده به بعد برای که بگن نگم که خب نه اصلا نمیشه همچی چیزی خب بعد یکی همه هست که رفته و خورده فلسفه ژرفی میگن برای اینکه معتقدن که او جب... هر جا قدم بزنه زیر خاک تاب است. ازاد اندام. که از شاپهنها نه گاهی فقط پیداست که بی آدم خارون کنه. این نشانه است که اگر تو سرزه <تصفح> که در کسی گفتن که میگن که دابات حتماً شنیدیم که اگر کسی چهر روز داره کنه جارو کنه قبل است تو آفتا و کنه تو آفتا کنه چه یه بنده خدای رو که از اون این کار سید چه بود این مثلا کنده تو چهر نو بود مشکول آبو جارو بود سلام مثلا مشکول گوزند باید با که بایدی میکنی اینجا که در اومان تحمیزی کنم میمیدارن این واقعا زنه ای تو آفتاکتا میسرد سه و ازشان چیشیه ای تحمیز میکنی وقت که اصوار اصوار الاخره این چه وقتی نهام ما نعضی دارم و قصه هم به این موامن گروه با برن بکنم سر صومت که اترم نکه اترم باید که که که که سر سر با حضاره بلطره هرچیین قسمهایی که باور نکرد خواهر که تو راستیسی خصوید که گفت میل که دستانه و بکنم پارو ولی میل دست ما قیمت چون پارویه که نگاه کندید میلش پاروه محضس خنبری و اینو میشه دوهایی از خزم مراد داده میشه از نوع پاروک کردن بیل آدمی هست به همه هست که خزم از خیلن بنی اسرائیل و اسمش او در قرآن نیامده تا اونجایی که من خیال میکنم کنم اسمش نیامده داستانی هست فقط درباره همراهی موسا با شخصی در برمان در سور که میگه که موسی آبایدی هست زندگان صالح خدا خرپرد و گفت من رو با تو بیام گفت نه تو نمیتونی بیارد گفت نه میام گفت طاقت نمیری گفت نه میام گفت هیچی نقدر بدی گفت نمیگم میگم گفت اگه بگی تمام میشه غرضی ها گفت نه میام می و بعد موسا شروع خیلی شروع نوزن کارهای عجیب رو غریب کردن اول میاد آد یک کسی رو سرد بود باید می دید کشتی در در یافت کشتی هم تورا الان باید کشتی دیوار شکسته ای باید اونجا دیگه گید درست کنو آجورو بده اونیانا باید مثل دیوارو تعمیر کنه موسا دیگه موسیقی سرد می ده. بگه این کار چیتون میکنیم؟ این چیتون این چیتون میکنیم؟ چیتون میکنیم؟ میگه میده که این یه آدمی بود که از پشتش، از نسلش آدمای بسیار شروع و فکره دویی که باعث کشت ها رو داره فرد وشتی بود من پشتنش که این فکره ما اون کشتی رو خوراه کردن برای اینکه آه, این شهر آدم ظالمیه که <متصفيق> مردم عذر مصادره می‌کنه این کشتی مال آقای دزاییه که تو باعث هم داره و تنها ممبر راهیتشون اینه اینو من کردم که فردا نگیرن نبرن تخمیش آسیب تعمیر کنه این دنبال کارش اما اون دیوار مشه برای که تو این دیوار گنگ بیا ثمره دو بچه تخریب ثقیری مرد ظالمی بوده این ای من درست کردم، شما میگه بگرانیم اتوارم بردشان کنیم در زن را میگه که رفتن رسیدن به یه جایی که در اونجا مجمع البحرین ماهی شروعی دوی صفره از این آب تو آب و سنده شدن <تصفح> که به تفاوت اشکاس مختلف کشتن، یکی هم بزید که آشکت اسکندر بود نظامی هم معتقده که خیلی همراه اسکندر بود، چشمه دیوان اسکندر و ازکندر نریستید. و مختلفی رو میگن توی دید. چشمه دیدم چیزوند، ولی رسه, رسه، رسه ماهی است و این رسه ماهی به صورت دره چوم هم مثلا ما هم در قرآن کریم هم آمده و در تفسیرش انباه احسان مقایده که هم خوده این است که میگه که ولی حافظ میگه که اون حیاتی که منتظرش هستی همونیست که بنده گفتم اون آب نیست که فیل دوستی اون آب نیست که حافظ کن آبی که حیاتی که یا در حیاتی جام, جام. سرشته جان به جام خود جان و جام تناسب لفتی بسیار یه اختیار، اختیار جان که در دست درست طورت ایلاوی آر جلبه ایلاوی جان به جام خود را. این رشته از اون نظام داره باقیه مثلا تقیلی مشکل این مارومه و زاهدان و طباب زاهد رو آفست هم دوست ندهید باید که دو پنشه امرار ریاض مارومه و زاهدان و طباب تا یار سر کدام داره. اینا همین مذبح از هم خود و علف و نماغ و و, و, نماز و من و مسجدی جمعیان تا خود راضمیان با که انا و زاهدان تربا تا یار سر کدام داره تا. و, تالخ و تالخ در چه خبول کنید که در دو کسی که دار خام به معنی مراد آرسوست به معنی دهان هم. بنابراین تو خام ازش میگیرم خام معنی هست با لب داره دیرون به لبتو ساقیانی در دور مجلس نیگساری یعنی کسی کامیاب در این مجلس که نظر ساقی با او نگاه نرگس همه شیده ها از چشم خوشن به باند داره اه... نمیدونم چرا نرگز را می کنم مصد باید چشم می دونم داریم به چدلیل من واقعا نمیدونم اما فیلی حافظ به توسید بسید کنسان ها هم کس دارد چون نرگز هر چشش که همه شیده ها شاید شاید شاید چشم را مخمول تشکیل می نرگست همه کیبه ها آجمانکی از چشم خوش از دارم زکر رو تو درم را بردیز تو دار زکر اندوانی یاد میگن جایی بودیم زکر خیر شما دفاع کردیم ها به زکر شما دفاع کردیم ذکر خیل یعنی یاد خیر. در عین حال از از از برست ذکر دارن و این ذکر رو تیر حضور می زشت زشت رو گفتن که باید حتما از تیر بگیم اگر هم به خود تیر هم با توجه به احوال موری موری ذکر به حال اون رو بود تردیم چند تا رو کی کهی بود به چه تردیم بود و چه دردیم یعنی اون یکی یعنی یکی اون به مورید که بگه اون هم باز برای یادآوری آوری هست. برای یاد خدا بود بعد میگه ذکر رو, رو دلم را را من یه برای دلم. ذکر را برای دلم دردیست تو خوشان یعنی همیشه دلم این ذکر رو خوز بگم که در تنبیر ارتانی رو نشانه سفاظ جمالی است جمال که سفاظ جمال و از گلد به تیر یوکالیونا نشانه سفاظ جلاحی و فند و هست و هر هم جلال و هم سفاظ جمال به را بردیم صبح شام دارد صبح و شام هم پناسب داره و از روح و صبح ببینید چند جا رو بیتایید زش <تصفيق> روح و رو شام دارد بسید نگه ریش در نظام لعنت نمکی تمام دارد که لبت و ما میگه تو خنده زده بر حدیث بکن پسته نمک داره دوان رو نمک رو که لب نمک اما نمک رو بر ز پراکنده هست آزردن شخص دفعه ایگر اینش که میگه که برسیونه ریش جنزت مجرور در نمیدان لعلت نمکی کمان بدتر در چه چاه زنه کحافظ خیجان جان دو دوست هم بلان چاه زنه در تشکیش می درخن. این خیلی و از که یک نسخه از نسخه های مرمول جرخاندری و 3 8 نسخه داره یک نسخه که نسخه این قدمی نیست دره باقی نسخه همه دره زنه بازار و قاب نمی کنه عرض کنم که چونه، چونه، چونه، چانه زغن زغن این زنختان رو، پونه رو به سیب تشبیل میکنن در رو یه پاستا می حالا یه <تصفيق> دو نشایم غرور افتشام چای زعفرانی تو اخر جان حسودی دو فلان ها او پیدا بشه وقتی دارم دیگه به تو می‌دارم که گرد گلستن بول سایبان دارد بهار ارزش خطی به خون ارغوان دارد قبار خط به پوشانید پرشیده رخ بقای بقای ده که حسن جاودان دارد چه عاشق میشدم گفتم که بردم گوهر مخدوم ندانستم که این دریا چه موج خون پشان که این دریا چه خون دارد به چشمت جان نشاید برد چه از تو که میبینم کمین از گوشه ای که از در کمان دارد چدام طرقشان چدام طرقشانت ز گرد خاطر اشاق به قماز سبا گوید کراز ما نهان دارد بید شان جرعی و و حال اهل دل بشنو که از جمشید که خستو فراوان داستان دارد چود در رویت بخندد گل مشهد در داناشه ای بر که بر گل اعتمادی نیست گر خستن جهان دارد خدا را داد من بستان از او ای شهنه مجلس شهنه. که می شهنه. شهنه شهنه خدا را داد من بستان از او ای شهنه مجلس که می با دیگری خودست و با من سر گران دارد به فتراک از همی بندی به فتراک همی بندی خدا را زود سیدم کن که آفت هاست در تأخیر و طالب را زیان دارد به چشم سر به قدر دلجویت نکن مهدوم را امراه بدیم چشمش بنشان که خوش آبی روان دارد به خوف هجرمی من کن اگر امید آن دارد کن. اگر خوش... به خوفه هجرمی اگر امید آن داری که از چشم بدندیشان خدایت در امان دارد چه عضو بخت خودگویم خود که آن ایار شفتاشو به که آن آفز را به تلخی گشت آفز بود خوشت خوشت اشتباهی به ترکی حافظ کافز را و چکر زردهان داریم به که این چیز این نظر صاحرم نظر من یک روشتنی که بگم این است وانگی مثلا غزلی افغانیاس یا افطنی یا امثال متأهل دوستانی که ذهن علمی دارند یعنی با حساب و کتاب و محاسبه و قوانین ریاضی و تجربی مسرفار دارند فکر کنن در ادب هم همینطور در ادب اصلا اصلا میگه که غزل به که صورت شیگری باشه، مطلیش شوشی کنش، قابلیش شوشی, شوشی،, شوشی، هم از هفت تا سی دربه باشه بورانان غزت داره هفت تا حافظم غزت داره چهار بگیم، بازم دنبال غزت از دربه به بالا باشه تا مطمئن، می‌بهید یا بیشتر از بیرش میزه هم داره قصدی باید میگه که صحیحی مدرد مثل عمر دشمنی کنی کتا هفته درمازه این است که قاعده نمیشی به هیچ وقتی که به زیبایی مردانه هم. که میکه دارن که گلده گلده همه هزارش. زه سنبول همه سایبان داره. باهار حتی به خون عرقبان داره. این خیلی گفتم که من دل. یکی پس دباهاره یکی هم منی شروفه هست یکی این، این هم منی محوض هاست که این محوض بوداری ها نیشش به کلی و اون دوزاید که فرق دارید این محوض بوداری ها نیشش در عوض داری هست بیهار هست از یه طرح شده باهار، از یه طرح شده کوفارا کوفارا هم به معنی شهری که مواد گودایی در شدیست در شاهنامه هم میگه که گوهره هست وقتی که باچه هایی سرش گشته هست و هم در نوباهار بعد اینجا به, به عبادت کنید نوباهار بعد، نوباهار یعنی مواد گوداییان بادیگه حالا، اینجا خودی دارن که که عرض کردن بس دارد باهار آره خطی خط مرات، خط مراد اون که تازه و از صوت و هنوز کمگور نشده و مفصلت نشده اون رو میگم خط سعدین میگن که خط تشاهدت بود صاحب نظر از نظر زمین بله کنم که حالا در زم خط به معنی حکم هست هنوز به خود در بیشان این خط بده که نمیدون این کارو بفتیم یا نکنیم خط به خون کسی داشتن یعنی خط به کسی داشتن میگه گل آرزو بود یا فصل بهار رخصار بود به نظر من گل آرزو. بود خط داره به خون عربان یعنی این خطش در می رنگ ارغوانی رخصارشون می‌کوشون بحار آرزش خطی به خون عرقوانی دارن یعنی خط سبسش، خط در میار و رخصار عرقوانیش و خونه‌های عرقوانیشون می‌کوشون خطی دارن، دیگر گل، به سنگل، دارن با آرزش خطی به خون عرقوانی حالا این خط رو اولی که می‌هاد سبز بشه موهای خیلی کمرنگ، کنهای که شبیه گرد به گرد که به می‌دهند بوی به نرمی مثل بویی که دوبت خانه‌ها این رو تشبیح می‌کنه به قوار قوار خط اما در این تعبیر یه ظرافت خیلی براده دیگری یه همه کار لفته است که یه نوع خط داریم پشت نگیزت دارن خط به نام خط قوار خط غبار چیه؟ خط قوار این است که یک خاطرت من نمیدونم این مراکش شودی من نمی دونم شده یک دو نسخه یک قربان لواهات و, و هندس من داره رحمان نیه و رو حد. الله سعادت میاد برابر میاد برابر میاد کم شروع کردم آهانیم یک نوشته. گامی که دیدار می‌کنیم. گفتند شاهزاده باسون تیموری. قرآنی نوشته بود که صفحاتش به اندوزه یه کشت ناخان آراد ناخان شهست من که از این دو برد برد، سه به خط قبار قرآن روی این چیز نوشته بود بعد مادرش بهش گفت که جلاله و قدره، کلام خدا اینش از آن است که تو برداره یه داری چیزی که نوشته بعد قرآنی روشن معلوم رو قرآن هیده که <تصفيق> می‌گفتن که یه صفحه شیده منه،, منه، که البته خب که افزانه هست ولی برگهایی از این قرآن باقی مونده بود و یکیش رو مروم استاد جرالتین حمایی استاد عزیز بنده تعریف می کردن که یک سطحه‌ی از این قرآن به دست هایسه دستورهای تقویل در دوره پهلوی اول رئیس دیمان کشور شد شد شده بود، افتاده بود و این رو در اون روزگار هفت تومن تریده بودن ایشون و فکر کردن که مفت دوی آوردن درستم بود و بعد ایشون نرمی کردن که آیسید رسول میخواسته این رو گفتن که من دفت رو در من میشه و به ایشون گفتن که این, این من که ها کنم چی کنم ولی اشکال چیزی که یه بینیم یه این چه آقای ممایی بفردن که من استاد این استاد که میتونستم کاغذ برای تاقص و گفتم که من این استاد میشستم وقتم گفتم که استاد آورد این اون استاد و آن تاجی کمپ نه. و اصلا میگن آوردیمشو شو چنت باز نسبت به میت که حالا. ولی استاد اون که این استاد ما با شروع کرد درس رو کارگاه قصاص چن آورده بود از این کنار گاوا اینجوری از این کنار از زاویه شروع کرد چیز کرد بعد اینا رو ادامه می‌کرد خب هر چیچه دوتر کار سختت و اگر یک ذریعه جاشن فراخت شد یک که سه آدمی که زنش داره نیزدار به همون ترتیب اینجا ناراحت او و چیز بود که این چطم شو اینام قصداد که شما اینجا باشیم بوجود حواس شما ببینیم شد که مرد اینو دووز کرد و کار مهم این نه کار مهمترش چست بودن این دوتا و دوتا مقبا برای اینکه اگه از داره میکرد یه خواه و هوای پوچک میبود این تمام این باز هر. و بودم که من اونجا بودم این وقت چست بودن، این بود دستش از صورت کار معلوم بس از می کنه. باید باید که معلوم نبود بسیستری کار می‌کنه و بعد از اینکه تمام شد مثل آدم می‌کنید که درست بسیسا می‌کنید که بعد استاد از کرده رو که من 20 دفعه، ست دفعه که بند دلت حوال داریم برام درست کرده گفت درست کرد چسمون بطرمون شده بعد به آقای دقابی گفتم کار داشت تشکیم آزا که یه بعد گفتم خب چی بهش بدیم استاد سمونیم که من گفتم خب نیستان آقای گفتم که هفتونه تریده هم گفتم که خب هفتونه تریده تریده کنش به هر راه رازش کردن باید از این است که خط، این،, این خط این خند روشت بود و اون خط خط بوار که دو یا یک نمومی بربر و دیزن ها نیمه در کارهای فرداز میاتونسازی و اینا هست و از از هم زیر زرد به ولی بزارید میبینید اینوهای هست موزن هست کنید از و یک،, و یک خمسه نظامی هست در موزه بیتانیا در کارگاه هر به وسیله استادان که از همین دوره تین نوری، از بیر از همین پایسون بودی پرگرد شدند و بزرگ شدودند واقعی نوریدند که درست دوست کردند در دوره شهر یک شاهنامه نوشتند و یک خمسه نظامی جاهنمان شدند دست یه امریکایی بیزنسمن ابله اوستاز به نام همیتون. تمام این کتاب برنبرد کرد در حال هایت و حصیل ها اینکه بیزنسمن که رو بیزنس سور از هاروان گرفت که قبل از اینکه این کار که کاروان آه... من میتوشم تو محراش ده برای داشتیم هم پول از گرفت گرفتون که قبل از این که این چانر کار کار چه؟ پیل مردم, مردم و حیث گرفتن و چاف کردن اما اصل کتاب رو از برد این مرده نمید در حال و نوی دست با رژیم که این شاهنامه بخر بخرم برای اینکه از آسیب زبار ولی قیمتی که تقاضا کرده بود برای شکتر بود بود من جوزیاتشو قبر شاید بریتان که اما در روزه بریتانیا هست و بعدم خمسر امکان نداره که شما تا وقتی که این کتاب نبینید بتونید تو زهن دو تصبر که این شکل کاری ممکن باشه. این همیتون این همیتونی سندان هست که استاد هست حتماً هم این ها جلوکر که شکلی نیست که الان این هنر جلو آمده واقعا این ها اصلا او رو رو حتیاتای میتونی تازه میتونید که میتونید که این دوگه میگد این همه دوازو دوازو. یا برها گباره گباره خط گباره خط اون شامید پشتید روحش یارد برهای که درکه حسد جاهدان دارد گباره خط چون خط گبار هم داره کلمه گبار با خط خوب و خب که بردم به های را که هم می شدن. گفتم که بردم گوهر این دریا چه موجه خونخشان دارد اینجا گوهر طبیلیست که مرادش گوهریست که از دریا در میارن و اون موربارج. دریا که هست پیدا که اون گوهر هم گوهر, گوهر کانی گوهر موربارج. یکی دوبا این مزمون رو حافظ بارها گفته اش مولانا هم سر اول خوندی و بعد تا بر بر ترکی موسیقی. موسیقی. موسیقی. و ترکیبی همبرین قضا لحافظ بیتش هست الان یا همی هست ازش که اصلا که اش قاسان نمو ولی افتاد. و از جای دیگه فراز و شیب بیابان عشق دام براست کجاست شیب دیگه که از فراغ نفر جناب این بارهایی رو گفته و حقیقت همین است که در راه سیر و سلوک کسی که قدم میگذاره در هر لحظه و در هر قدم هزار جور محلکه است که برو از, از رسیدن نوحصول کنه همه های مختلف، پیال مختلف و جیهوی رزده شدن، مورد کار مردم قرار گرفتن درفتن، کردن و بار چیز دیگر آبحتی که گاهی که قصدادی میجی که پیدا کردن رد پای مورچه رو به سنگ سخت در شب تار سخته و من برای اینکه بدونید که تا چه حد این علمه بزرگ کوشش کردند اینکه خواهجه میگه که در راه عشق وسوسه را بس یه است وسیست بازا روچ در به پیامس روش کن سخت جایی حدوزنده و اینکه بدونید بیگه که غز داری بیگه که ریای واسه از اینه که آدم یک کاری رو درش عقیق نداره یه کاری که وقتی تنهاست سیاد با آدم ترتیب بهم جلو مردم و برای مشاهند مردم این کار رو خیلی رو برنجام بده بسه این بله از میشه قلیز بگه نوانس رو کور بده هزاغه رو به دو تو تربا بکنه به افتادی گروه کنگی بکنی در حالی که این طور نیست خب نیست سوال از همین میگه این ریاب بده این شرک، یعنی شریکی برای خداست برای که شما عبادت رو باید منحصرا برای خدا بکنید و وقتی که نصف و مخلوق محلوم در حقیقت این مخلوق رو در مقام خالت بذاشت کنید بکتر از به حقیقت همین است یکی از آفت بلاهای بزرگ اجتماعی ریاه اما همیشه تشخیص ریاض این سادگی نیست گاهی نفس وستسه ها میکنه آدم مات میمونه مولانا یک قصه داره میگه که به روزی معاوی خواب بود وقت نماز داش میگذشت خواهب بود ابلیس آمد از خواب بیداده که پاشه وقت نماز, رو نماز رو. بود باید راه راه نماز بود معاوی یکه ابلیس چستید که تو قایدتاً باید مردمو به راه بعد راه ناماید که چی برای چی من از خواهب بیداد کردوشن نماز بکنه نمیگفتو به لحن اصوارو برزید؟ گفت گفت که تو اگ میخوابیدی بعد بیدار میشدی میدید نمازت غذا شی خیلی ناراحت میشدی و تعسف میخوردی از اینکه چرا تأکید در برابر خدا سر نوش انجام ندادی و گرفتی خوابی و اون تأسف خوردن سوابش بیش از نماز خندن من تورو بیدار کردم که اون سواب ن از میگه که گاه یا گفتم از رد پای مور چیزتر میگه که که مردی میاد همه کار میکنه خیلی هم خود میکنه همه اینجور اصطلاح خدمتم میکنه برای خاطر خدا فکرم میکنه که صرفا این برای خاطر خداست خب طبعا چون آدمیه آقل و مرزان هست معقول آفرد زاهد املاقش رو به خدمت رو خبر همه این میکنه. مردم بهش علاقه میده ولی این جمعین داره که پیش فرماته علاقه نظام کنه کنه نکرده دلشن هم میگه او این بعد امتحان کنه ممکنه که اینجور نباشه امتحانش میتبینه اگه کسی میگه این کارو کرد یه چین بچه ای در بین مردم پیدا کنه وقت ناراحت میشه ناراحت میشه. اگه ناراحت میشه باید میشه. باید ولی باید کار باید, باید. میگه از این باره ترده بکنه بابا میاد همه کار میکنه همین اینچار میکنه هم این مرحله رو هم میرسه به اینجا که میاد مثلا پرس کنید مجلسی مردم اگه او رو هم مثل دیگر رو تربیر کنن و تربیر رو گیرن فکر کنه کنید این شه مردم حق دلش چه میگه از این بالاتر بگم وقتی کسی یقین اینه قطعی داره که تمام مقارکی کنه برای خاطر خداست و تمام فعالیت چند می در این زمینه و فکرم بکنه امتحانش اینه آیا اگر کسی آمد و در این کارهای خیر و کارهای نیک از اون سبقت و بیشتر از اون کرد آیا این ناراحت میشه یا ناراحت می؟ اگه ناراحت میشه باید ببنید. بنابراین کار واقعا تکمیل لمس و پاکی کردن وجود و تسلیه ذات تا برخواستن از سر حوضتهای جسمانی کار بسیار تو دوی که مدت ها آدم فکر می کنید حالا برای علم یا برای یک ندران تقوی یا برای دین دیم داره فاعل می کنه دنوالی برای علم نیست داره. دا داره این رو یک پیر میزن پیر راهنمای نمایت راه رو را قبلن رفته و باید باشه ای به تو رو مرض تو رو تشکیز کده دواش هم تشکیز کنید دواشی برای تو هست نباری بسید البته این همه تئوری که من توی یه گفتم باز برای تازه در رسم روزه کم خشمکار بگم که من رو یه رفت کنیم که فلانی اما اینجا سری که راست داشت تبدیل میکرد که این خودم هم متاسفانه سعادت تشربت خواهر رو همه تو قیده باشیم علتش اینه که من عمیده دارم اگر چنین پیری وجود داشت و وجود داشته باشه قصه مولانا و شمزی هستون هم؟ این دوتا به هم برکوردن ما اونهایی که افسانه هستونی هر بارو خواهر, خواهر ندهیم اصلا ولی زندگی وران از این رو به خود شد به کلیه چیز. سر چهر سارگی ای ای ای ای ای ای ای ای چهر این چهر این گفتن؟ هستا بیش از چهر اصلا روش زندگیش رو کلیه شمس، سوال درستی هم و تا روز آخر زندگیش توی حرفش، توی شعرش یا صحبت آفتاب می یا صحبت شمس می یا صحبت مور می شود دو فیر می فیرش یاد انجز این زمان جان تا منم بر تا آفت است بوی پیانه ها خود یک صرف پیر باید مثل مگناتیست آدم رو دو دوباره دوست بگیشید اگر خود کسی از همون دیگه شما رو کشید جاجبش خوش ها اما اینکه یه گروهی آهوگردون باشن و تو بیان رو چهت قطعه آقا و خدمت آقا و آوان در دکه و دکون دست دستا از اصلا خود دعوی ارشاد و دعوی پیری یکی از نشونهای نفسی برای اینکه پیر در حقیقت محصولیت دونه, دونه این مریدان رو خودش بگردن بگیرم از قطعه ارشادی دارد اگر این آدم چیچه خودش رو بکنه که مر تو که نفسی تو که خود بهتر برمی بیدیرون چی هستی تو چجوری بخوای سب تا آدمید یه رو به کمار درست کنی؟ دست این من دوره نمیدونم اینا نظر از ذر شما این هست این مطالب هست که راه رفتن ولی ما از نظر ها سخت کنهایی و دوکون و دستگاه و طور دیوان حافظ فور صحبتی هنچی شیخ میگه یاد باشه <تصفيق> حافظ شیخ میگه و انی آقوم نیست یعنید که محصول هاست و آقومده رو دوزتون اونا جاهز و, و بود. شیخ که میگه یعنی پیر طریقت پیر ما را به مستی افسانه کردن پیران جاهز شیخان رو گلدن پیر هم زنان من هم شیخ چرا که بعد تو کردی و او به جا برد این بسیار شیخ ای رئیس خانقا در هر یه تشکیل ها تصرف پیر در هر دل یکی یکیست پیر که به همین امکه در هر خانقا یک شیخ تعلیم می‌کنه که سرپرست اون خانقا و سرپرست دستگی و افراد پوریدان شیخ نمیگه حافظ که می‌که احویزاروان می‌که اونکه می‌که شیخ مراد کنه شیخ مراد آفران آخوندن داره جای خود, خود. ولی با ایزان این در مهرام و منفر می کنن تون به طلبان بیاوند دارن کار دیگر ولی میگه باشه که من به جوز و می و که رو که بکنم و شبه از رو کنم ارز کنم که تو عاشق میشدم گفتم که بردم گوهر محصول نداخستم که این دریار چه موجود اونتا دارد؟ اگر یه وقت خودتون خواست در این زمینه مطالعه دکری بکنید وجود بکنید که ترجمه فارسی احیا و یونتین متن اجرمش ماهیت کار فارسی است. شیстьاه صد صد سن حدیب جمع، شاق بنیاد فرهنگ ایران یا امیرم، شاقای مجددان صدره هم وسیل همون شهرت سامیه این رو برمیشن. دو روح، محلقات و منجیات، در اونجا در از اخلاق از و در منجیاتش از اخلاق حسنه صحبت می مثل یه روانشناس درهجه یک اموزی ولی که سرد درجه بالاتر از روانجناس درجه, درجه, از درجه میره تا احماق ذهن آدم بیرون می کشد ریشه هایی و دو دو اون دو تا رو رو رو موجیات و محلقات یاوزیمونی عربی بلد این کل تا بفنید که موجه فشانی که حافظ میگه یعنی چه آشد گفتم که گردم توپر مسئول ندانستم که در دریا چه موجه فشان دارم این میبینید که غذا نفر شدن چشمت جان نشاه کرد هر سو که میبینم کمین از گوشه ای کردست و تیرند در کمانگار اولا گوشه با چشم تو یک که کمان مراد ابروز و تیر تیر مجرانه که از هر طرف هست میگه از هر گوشه که نگاه کنم در کمی نمید بناباید این از به جان به در بود. سر به قد دل برو گفت کن مندور چشمندار باقید با نخواد میگاه شوند، کیونگه اینجا بیگه که مراد من آجایی که از اینم تواقش باز بیاره پایین تر میگه مراد من همین باشد که پنهان مهره او بردم کنار و و آهوشش چه بوگم چون نکاهر شد اینجا میگه که اجازه دارم ببینمه سر به قرض دردیوی از من اون چشمم را بدیم سرچشمش بینیشم یعنی فاطر زید چشممم آب روان داری چشمه می‌دونید که گاه‌های تشبیه چشم به اضافه‌های های یعنی مثل چشم به اعتبار ضایم می‌دونید ولی این چشم هم عشق چشم و می‌دونم چشم هم آوازش, چشم هم آوازش چشم هم. چشم که خوش آق نشاندن برای سر که میگن معنی چیز کردن یعنی خاشتنه در ذهن برای قد م... معشور که میگن یعنی بمشون یعنی یه دقیقا هم بینن به سر به قد دلجور را به دین سرشش که خوش آمی روان دارد من از اون نسخه به دفیقان داری میخونم بعضی چهراش که همون میشه. خیلی مهمه. به فتراخ از همین بندی خدا را زود سیدم فتراخ اسم یه دنباله قلعه پانند پشت زیر به وقتی سیر رو گرفتن دو یا پستن زنده یا پشتنش می‌بندن اون پشت زیر و میان اونجا حتی دشمن را اگر میگیرن سرشون گردن سر بریدن میوردن به فتراخ به کر بندی خدا را زود سیدم کن میگه اگر بالاخره من به فطره که زینت می یعنی این مدت دا اقل بعد از مرگ مساحبه تو هستم زودترین این خدا را را, را, را, را به برای خدا را یعنی که <تصفح> <تصفح> هاست در تعدیر رو، طالب رازیان دارد، این نفت تخییر آفات ذر برمثل عرقی است آفت هاست در تو دام گلد خاطر و ترره به معنی اون قسمتی از موس که چین رو داره و می آوردن جلو پیشان. مثل که تردور یا که تردور می‌تردن، خانوها بیتر چینی می چی می ها می‌دن چینی دن؟ من یه می‌شوند؟ این جاهای که در این قسمتی از بالای کتیبه کام ها جلو دیوار دابنه بگذارم که جلو می‌میدن تردوری جریار یخم شود شکن تره کام پان حد بر سر ایوان دستان بره. گرد خاطر یعنی زحمت رو میگه آشقانو که با این دام تو سیف میکنه باید دامشو گردشو میعفشانه سیف کشد گرد میخوایی کنونه این یعنی باید این که فارق میشه از سیف کردن دام تو افشانت گرد خاطر به قماز سواقی گرد بعد همیشه سپنچینه که سپنچینی شمید نسید بوی زلف رو برمیداره میبره بوی عطر رو برمیداره میبره بنابراین باز سواقی وزید معلوم میشه معشوق از کجا گذرگرده برکه میگه وقتی گرد خاطر ارشاق از دامتور برش افشان به ثواب غمواز ثواب میگه که یعنی نه برای که بعد هم سیدهای دیگر باشید باشید تو در رو گرد بخند در گل مشوق در دامشه گل برد ها سر اینطلاف کتن که گل به معنی خورست کارده گل که از گلا و قبض گل به معنی اون چیزی که به این که ما در پارس شاید واقعی برای خون نداره هر کدوم از گلا اسم خود داشته برمشه خیلی ختمی خیلوپر بستانحفوز سوسن زنبر براته یکشم گله که همون کل پنجپر خود روگ وحشی پر از تیغ یه کبیر در ایران زیاد در میاد رنگ زرب و سرطن هست سرطشت از شکراب گیرم و بوی بسیار خوشی ببینیم تا فرسنگان رو بولیم تو در روگت خیلی زود باز میشه هنوز سرماه هست یه است هست سرمون گل سرمون همه خیلی در همون دوزگار باز میشه گلگل هم در همون روز فعل میشه و دنبال جورد میگرده گلگل که میخونه دنبال مادهش میگرده این داستان عشق گل و گل و عشق شم و فردنه ما درست کرده کنه ندارم کنه ها بله علت اینکه این داستان رو راه این است که درست دوران خوانندگی و روی گل بود شروع کردن گل به باز کدن تو در رویت بخنده گل یعنی داره باز میشه تو در رویت شروعی میخنده گل بخنده گل من در دام شید گل بود خدا یعنی که گل اعتماد اینیم گل معروف به توبایی اون گل اعتماد اینیم بر حسن جهان دار ز خوف حجرم اینم کن اگر امید آن داری که از چشم بدنگیشان کدا کتر امان دار کسی ندهد. بی بر ها و نسخه من هست حال احل شهرکت کن. بهتر هم هست برای اینکه دنبال صحبت جنچیده و دیده شد. که یک نسخه داره حال اهل دولت پرس یک نسخه داره حال اهل دل پشن یک نصدر حال اهل شوکت بیم سه و سه هشت نصدر باقی شما همه این دار بی افشان جرهی برخواب و حال اهل شوکت بست که از جمشید و تیگه و فراغان داستان دارد داست. کی داره؟ خاک از خاک باست. بی افشان جرقهی و خاک به خاک سرمزد بشه بدحال انشوکت از رو فرس. این همونیست که قیامانهی می گرفتن به جاگاه روزه گریم یعنید به جاگاه می گرفتن کلی با خاک به حال رو یعنی جمشید به در اما مسئله جرقه پفشانده رسم جایی بوده بر بزیار شعرها هم آده حافظ حافظم چند بار گفته پرشکش مداند که چیز که ست مکاند و جام و شراب شده تا آدم بیست ارز کنم که منو چهیی داره جره برخار از جام شا. در عربی داریم بلالعب و لل عرضیم که اصلا کرام نصیب برای زمین از قیمانه بزرگواران یک اسم نیم این رز تا اونجه که من دل خیلن از بانم که از از طرس اول قرن دوگون یعنی yani در نورد سال های صدی 30, 32, 35, 130 شده دنده کتابی دارم با جوان مردی کنیم با جوان مردی کنیم که جوان مردی که از جا آوردن یکی کلاسه کردن دید. در سرز اول قرن دوم عقوم هجوی فتیان برای تطریب میگذاری و آواز آن جمع از همین روزگار آین خطوبت با علیاری آمید و و, و آداغ و ترتیب و حتی زبانی خاص برای آن ترتیبه این زبان رادر جوان مردان مثل جایلای امروزی در لباس پوشیدن روشی خاص داشتن و نوی سر خود را روغم می زبر. و بر سر گرور عبال هندی غالبه و بطلوس. ما از سر گور عبال حکمی غالبی برم در شاعری که در اسلام هم ریگزا یعنی شعرها بسید تا اشکر و شعرها می خوردن چا پیادهی که مرحوم عباس اقوال مجلده چانپ همه هم یادگاه هست یک افتراح یعنی یه افترآل این رسم جرعه و هاگیردن از کجاست و, و از چیه و از چیه افترآل از این سوال جواب داده به اطلاعات بسیار بسیار مهم و در این حال بسیار جالب توجهی هست بود چون اینها این, این رسل دادن که همه اینها در مجله یادگار چاپ به نظر اون یادگار یک سال بیشتر بیشتر نشد خیال میکن یا بیشتر نیم بینام شماره مجله رو می ولی در مجله هست فرجهت هم کل به مجلده که چاپ شده بیشتر نیست فهلست هم دارده خیلی زود پیدا که قیده کرد. و احال این از ولی که در اسلام به ستاره شراب زبان تو این ابو نیندی قاربه ترده یا یا داده میران. یاد کردم و بیارم و بگم که برس یا شم دو ریب ها ها از جاویدانان کی بنابرای اعتقال درشجن مقدسه و ولی به هر حال و پرهیزگاهی و تربا و شاهی در جنگید و همه این مسائل و جمعشید هم مظهرش دو جواب و جمعه بود صاحب اون جام جهانی. این همه رو حافظ حواس جمعه آدمیم آلمی هم که فرام و جهاندین دشترانه هوابس آلم رو بکنیسید. از آج. خدا را دادمان بسکسند از این شهنه مجده است. شهنه ببینیه است، اما شهنه مجلس که رئیس نیست ظاهراً در مجلس‌های بیگساره اینجوری که میادن تو دستخانه آدام و ترتبیش رو ننوشتن یادم کنار باید پیدا کنی یه, یه چیزای یه حاکر اطلاعاتی در حیران ظاهراً برای کسی اولاً سابیگری که آداب رو پسر داشته که اون در قابل هست، آین شرا کردن داگی گریچ کردو. و باید چه باید چند کنی بگوند. باید چه بکنن. باید چه بکنن. میگه باید مواشب باشه. از ساقی باشه. بعضی درو نباشه. بعضی آقام همه در حت هم باشه. بله این چه کسی عبده نکنه، بس کنن و سرطان و باید چه بود و دستان داره که اگر جا جا جا اما این هم در مجلس به خصوص در مجالس اشخاص مدعی بکنه بوده که نمیداشته کار مجلس به قضاعت و به جاهای برد اینجا این که شهنه مجلس ظاهرم من اطلاع مطلب ندارم اما این عمرو تر است. دست چرا داد من از روبستان برای اینکه می رو که با دیگری مرده عربتش رو مام کنیم سرسنگیش رو سرگران داشتن این سرسنگیم رو شهریار شاعر، ساخته که قربان هرچه بچه خوب استارش بشو با دیگران باری می و باها تلو, تلو. <تصفيق> چیزی که همون زبون هموانه به ساخته این همین توش همینه بعد یکی مشتی کسی بود که چوچو لخت چو و گوبرم سیف ست سنت گبورگه و 500 ست بود بعد اشاره میکنم نمیدونم طرف کسو گوش چیه کیه بگه شده ها شنیده رای شیراز میرد شیراز در زبون جاره شیره <ساس> دشت ها شنیدن رنش شیراز میردی آنجا که گرز رستن دستان بود گرو خدا را داد من بستن ای شهنه یه من می باز با دیگری خوردست و با من صدیان دار شو از وقت خود هر شیوه آنسو باری پاکیو کنید شیو نیوازی باید کنید